عزیزان به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدید. در این کلاس ها ما کل کتاب مقدس رو بررسی میکنیم و کل کتاب ها رو یکی بعد از دیگری به شما معرفی میکنیم. ما ضمن بررسی هامون به کتاب جذاب اعمال رسولان رسیدیم و در این کتاب ما تاریخ شکل گیری کلیسا ها رو یاد میگیریم. این مهمه که ما میراث خودمون رو بشناسیم. چون این به ما کمک میکنه به هویت خود پی ببریم. پس به اتفاق هم به الگوهای پنتیکاست از کتاب اعمال رسولان گوش میکنیم تا ببینیم میراس روحانی ما چیه. سلام. مایلم توجه شما رو به کتاب اعمال جلب کنم که کتاب تاریخ نسل اول کلیسای عهد جدید هست. گفتیم که عنوان کتاب اعمال رسولان توسط نویسندش به این کتاب داده نشده و عاببینی رو ملاحظه کردیم که بسیار مناسب تر از عنوانی هست که توسط مترجمین به این کتاب داده شده. در جلسه قبل این واقعیت رو که عنوان اعمال رول قدست میتونه بسیار مناسب این کتاب باشه ملاحظه کردیم و همینطور گفتیم که عنوان اعمال مسیح قیام کرده توسط رسولان هم میتونه عنوان مناسبی برای این کتاب باشه چون اعمال اون افراد رسولان و سایرین که در موردشان در کتاب عمل میخونیم آشکارا با قدرت روح القدس و با قدرت مسیح قیام کرده انجام و عملی میشه روح القدس و مسیح قیام کرده از طریق این افراد کار میکنند و این امکان رو فراهم میکنند که اونها این معجزات رو به ظهور برسونند و اما عنوان دیگری برای کتاب اعمال رو میتونیم الگوهای پنتیکاس بگیم من این عنوان رو خیلی دوست دارم چون فکر میکنم ما نباید هرگز این واقعیت رو فراموش کنیم که کتاب اعمال همهش مربوط به پنتیکاس هست در جلسه قبلی ما رابطه پنتیکاس با اهداف کلیسا را ملاحظه کردیم. هدف پنتیکاس ماموریت بزرگ بود. همون چیزی که آنژیل با اون خاتمه یافتند و کتاب اعمال با اون شروع شد. هدف پنتیکاس ماموریت بزرگ بود و هدف کلیسا هم همین بود. ما نباید این دیدگاه رو فراموش کنیم و نباید این واقعیت رو فراموش کنیم. چیزی که در باب دوم کتاب اعمال شروع میشه در سراسر این کتاب ادامه پیدا میکنه. اینو فراموش نکنیم. وقتی سنگی به درون برکه آبی میندازید، امواج دایره‌ای شکل پدید میان که رفته رفته بزرگتر و بزرگتر میشن. میتونید این پنتیکاست ابدی رو در مرکز این امواج فرض کنید و امواج بیرونی رو پنتیکاست‌های بعدی یا دفعاتی که روح القدس کار رسولان رو تایید میکنه به حساب بیارید. در سراسر کتاب اعمال می‌بینیم در هر بار این پنتیکاستها سبب گسترش انجیل و انجام ماموریت بزرگ میشه. معموریت بزرگ میگه بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید از اورشلیم شروع کنید بعد به یهودیه برید بعد سامره و بعد وقت اقصانوقات جهان برید تا همه ملت‌ها را شاگرد سازید ملاحظه کنید وقتی شاگردان عیسی در اورشلیم شروع به شاگردسازی کردند روز پنتیکاست بود اما بعد وقتی به سامره می میبینیم که اونجا نیز یک پنتیکاست هست. وقتی به دنیای غیر یهودیان میرن در باب ده خانه کورنلیوس افسر رومی پنتیکاست دیگری رو میبینیم. در باب 19 وقتی اونها به افسوس میرند که در آسیا هست و نقطه شروعی برای رفتن به خزانوقات جهان هست، پنتیکاست دیگری رو میبینیم. در هر مقطعی که مربوط به انتشار انجیل هست، میتونیم مداخله الهی رو ببینیم. وقتی اونها به اروپای فعلی میرسند در اعمال باب 16 باز هم مداخله الهی رو می‌بینیم. پولس تجربه ای داره که به اون دعوت به مقدونیه یا رویای مقدونیه میگیم. بارها و بارها وقتی آماده میشند، وارد این مقطع اجراع معموریت بزرگ بشن، مداخله الهی رو میبینیم. مداخله الهی که در باب 8 میبینید به صورت جفا هست که نه تنها کلیسا رو تهذیب میکنه، بلکه وقتی اونها از مأموریت بزرگ اطاعت میکنند، اونها رو به طرف امواج ابدی پنتیکاست سوق میده. در با باب هشت ما پنتیکاست سامره رو میبینیم، در باب ده و در باب شانزده و در باب نوزده همون رو میبینیم. این چیزیه که من بهش الگوی پنتیکاست میگم و یا پنتیکاست دائمی. وقتی کتاب اعمال رو میخونید، این الگوهای پنتیکاست رو فراموش نکنید. ما در جلسه قبلی برخی از اون الگوها رو دیدیم که وقتی کلیساداش متولد میشد و داشت شکل میگرفت، این الگوها هم در حال به وجود آمدن بودند در باب دیدیم که بین عطایای روحانی که عطایای شبانی و عطایای روحانی عملی بودند تفاوت وجود داره. اونهایی که دارای عطایای روحانی شبانی بودند و اونهایی که عطایای عملی داشتند گفتند یا به عبارتی ها به مارتاها گفتند از میان خودتان هفت نفر از مردان نیکنام و پر از روح القدس و با حکمت رو انتخاب کنید تا آنان را معمور انجام این وظیفه بنماییم. و اما ما وقت خود را صرف دعا و تعلیم کلام خواهیم کرد. جالبه که ملاحظه کنید این الگو در باب 6 پدید اومد در اعمال باب هفت استیفان که یکی از نخستین خادمان عملی و یا به قول امروز از نخستین شماسان بود، از خدمت عملی به خدمت شبانی تغییر مسیر داد و تبدیل به واعظی بزرگ شد. در باب هشت هم همون چیز رو میبینید یکی دیگه از اون شماسان به نام فیلیپوس هم از الگوی اطهایای عملی تغییر مسیر میده. و تبدیل به یکی از بزرگترین مبشرین در سامره میشه یادتونه گفتیم هر بار کتاب‌های تاریخی رو می‌خونید خواه در عهد قدیم یا در عهد جدید پولس رسول در اول قرنتیان باب ده آیه یازده به ما میگه که باید دنبال سرمشق‌ها و ها بگردیم همه این اتفاقات به عنوان نمونه‌ای بر سر آنان آمد و برای تربیت ما به عنوان عبرت نوشته شد زیرا ما در زمان‌های آخر زندگی می‌کنیم در کتاب اعمال ما سرمشخ‌های زیبایی می‌بینیم. استیفان که جانش رو به خاطر موعظه‌ای که می‌کنه از دست میده و در باب 7 گزارش شده، قطعاً یکی از اون سرمشخ‌های بزرگه. او به احتمال زیاد یک بازرگان بوده چون که می‌بینیم که برای کارهای خدماتی در کلیسا مناسب تشخیص داده شده. اما بعدها میبینیم که او وارد عرصه عطایای شبانی میشه و این نشون میده که او خودش رو در عرصه‌ی عطایای عملی ثابت میکنه. و بعد راهش رو در عرصه شبانی عطایای روحانی و خدمت پیدا می‌کنه در کتاب مقدس وقتی صحبت از رهبری میشه یکی از اصول مهمینه اول بذارید شناخته بشن یک رهبر روحانی رو چطور تایید می‌کنید این میتونه با اثبات درستی او در عرصه عملی باشه وقتی شما به او مسئولیتی میدید که مربوط به چیزهای تدارکاتی یا خوشامدگویی یا مثلا نگهداری از سیستم صوتی هست اگه صداقتش رو در اون چیزها ثابت کنه، بعد از اون شاید عطایای دیگرش شناخته بشه و به عرصه شبانی تغییر مسیر بده. باز امکان داره استفان ابتدا خودش رو به عنوان یک شماس اثبات کرده، اما قطعاً بعد از اون وارد عرصه شبانی شده. الگوی عطیه استفان آشکارا پنتیکاستی هست. من این کلمه رو به کار میبرم چون خیلی اونو دوست دارم. فکر می پنتیکاستی کلمه زیبایی هست. کلمه پنتیکاستی دقیقا معنیش اینه که او مرد روحانی بوده و از قدرت روح بر خدمتش برخوردار بوده. روح القدس در ما کار میکنه و به نشانه اون میبه های روح القدس گفتیم. اما روح القدس بر ما هم کار میکنه که به اون مسه نیروبخش گفتیم یا مسه روح القدس بر ما و اون با عطیه خدمات روحانی ارتباط داره. استیفان بدون شک مردی پنتیکاستی هست چون وقتی اون موعظه با شکوه رو میکنه آشکارا با قدرت و شجاعت روح القدس موعظه میکنه و مس روح القدس بر او قرار داره یکی از چیزهایی که از شما خواستیم ضمن مطالعه کتاب اعمال رسولان ملاحظه کنید عمل کردی هست که توسط کلیسا ارائه میشه مخصوصا موعظه در کلیسای عهد جدید در ابتدا پتروس واعظ اصلی بود اما وقتی به باب هفت میرسید ملاحظه میکنید که پتروس تنها واعظ توی کلیسا نیست استیفان تبدیل به واعظ بزرگی شده. حالا موعظه های استیفان طولانی شده. اون باب شست آیه داره و اکثر اونها شامل موعظه استیفان هست. امیدوارم از موعظه لذت ببرید. من شیفته موعظه هستم. سالها سعی می کردم یاد بگیرم چطور موعظه کنم. باور کنید موعظه میتونه ترسناک باشه. برای موعظه نه تنها باید دوره فن تفسیر رو گذروند که بهش موعظه خارج از متن کتاب مقدس میگن. و نه تنها باید به فن خطابه آشنا بود و دوره مربوطه رو طی کرد بلکه من معتقدم بیش از هر چیز دیگری موعزه کردن یک عطیه روحانی هست و اگر این عطیه نباشه و اگر مس روح القدس بر موعظه نباشه در واقع اون یک موعزه ای نیست که عطیه در عهد جدید شرط داده شده موعزه پنتیکاستی تنها نوع موعزه ای است که در عهد جدید مطرح شده من شیفته موعزه استفان هستم چون که او 39 کتاب عهد قدیم رو در یک موعظه به طور خلاصه بررسی میکنه در کل دوره بررسی کتاب مقدس در دانشکده کوچک کتاب مقدس من حدود 90 جلسه برای بررسی 39 کتاب عهد قدیم اختصاص دادم اون دست شما که در طی این دوره با ما همراه بودید میدونید که دغدغه من این بوده که بتونم اطلاعات 39 کتاب عهد قدیم رو در طی این 90 درس پوشش بدم استفان در که از کتاب مقدس داشته و نشانه اش هم اینه که توانسته اون رو به طور خلاصه و قابل فهم و به روشنی بیان کنه و موضوع اصلی رو خیلی واضح مطرح کنه استفان تمام 39 کتاب عهد قدیم رو در یک موعظه جا داده و احتمالا توانسته اون رو در مدت 20 دقیقه تفهیم کنه او از ابراهیم شروع کرده و به اسحاق و یعقوب و خدمات یوسف اشاره کرده خدمات موسی رو ذکر کرده و از یوشب و داوود و سلیمان تا رفتن به اصارت بابل رو به تصویر کشیده و به عبارت دیگه فاصله زمانی کل تاریخ قوم یهود رو در یک معزه به روشنی بیان کرده. وقتی استیفان این معزه رو میکنه و کل تاریخ قوم یهود رو مرور میکنه، منظور خاصی رو دنبال میکنه. اگرچه ما میبینیم که ای بسیار پرسمر هم هست. اما هدف اصلی معزه استیفان بشارتی نبوده. هدف موعظه استیفان این بوده که به رهبران مذهبی بگه که اونها فیض و محبت و نجات خدا رو رد کردن. اونها تمام کارهای خوبی رو که خدا سعی داشت براشون بکنه رد کردن و این روند با رد کردن عیسی مسیح به اوج خودش میرسه. این کاری بود که اونها در اون لحظه میکردند. اونها آماده میشدند که استیفان رو سنگسار کنن چون او خبر خوش آمدن مسیح عیسی، مسیحای موعود رو موعظه میکنه. استیفان موعظه خودش رو با صحبت از خروج به پایان میبره. استیفان به اون مردم میگه که خروج از مصر و رهایی از بردگی مصریان شاید بزرگترین معجزه تاریخ یهود در عهد قدیمه. خروج نجات رو به تصویر میکشه. خروج مربوط به خدمات بزرگترین مرد خدا موسا در طول تاریخ قوم یهود در عهد قدیم است. استیفان میگه که موسا چهل سال در قصر فرعون زندگی کرد و بعد دعوت شد و از میان بوته مشتعل به او معموریت داده شد که منجی قوم خودش باشه و تبدیل به وسیله ای انسانی بشه برای خروج قوم خدا از مصر و رهایی اونها از بردگی مصریان. فسح یهودیان در مرکز این نجات قرار داره و آیین جمعی مسیحی ما اشاع ربانی برآمده از دل اون نجات است. اساس مکاشفه ی حقیقت یهودی مسیحی مربوط به خروج است. در ارتباط با اون رهایی موسی شریعت خدا را از خود خدا دریافت کرد که در پنج کتاب اول کتاب مقدس جا گرفته که خلاصه اون همون ده فرمان است وقتی استیفان تمام تاریخ یهود رو برای این قوم یک یک ذکر میکنه نکته ای که در نظر داره اینه. شما موسی رو رد کردید و نجاتی رو که خدا براتون با خروج از مصر فراهم کرد رد کردید و میخواستید به مصر برگردید و در اون ایام گوساله ای ساختید و برای آن بود قربانی گزرانیده و به اعمال دست خود شادی کردید. و گفتید این است که ما را از مصر نجات داد. شما موسا را رد کردید، نجات خدا را رد کردید، قانون و شریعت موسا را رد کردید و موسا با لوهایی در دست از کوه پایین آمد و به شما گفت که شایسته قوانین خدا نیستید. نکته مورد نظر استیفان دقیقا این بود و از این رو تمام تاریخ قوم یهود رو برای اونها مرور کرد. استیفان به این نتیجه میرسه. ای گردن که ذاتن کافرید و گوشهایتان است شما هم مثل اجداد خود همیشه بر ضد روح القدس مقاومت میکنید. کدام پیغمبری از دست اجداد شما جفا ندید؟ آنان کسانی را که درباره آمدن آن یک تای صادق پیشگویی میکردند کشتند و در زمان ما شما به خود او خیانت کردید و او را به قتل رساندید. واکنش به موعظه استیفان قابل پیش بینی بود از کتاب مقدس براتون می خونم اون این طور میگه اعضای شورا از شنیدن این سخنان چنان به خشم آمدند که دندان‌های خود را به هم می اما استیفان پر از روح القدس به آسمان چشم دوخت و جلال خدا و عیسی را که در دست راست خدا ایستاده بود دید و گفت ببینید من همکنون آسمان را گشوده و پسر انسان را در دست راست خدا ایستاده می در این هنگام فریاد بلندی از حاضران برخاست آنها گوشهای خود را گرفتند و به سوی او حمله کردند او را از شهر بیرون انداخته سنگسار نمودند کسانی که بر علیه او شهادت داده بودند لباسهای خود را کندند و پیش پای جوانی به نام شاول گذاشتند وقتی استیفان را سنگسار می‌کردند او با فریاد گفت ای ایسای خداوند روح مرا بپذیر سپس به زانو افتاد و با صدای بلند گفت خداوند این گناه را به حساب ایشان نگذار، این را گفت و جان سپرد با اون سخنان والای استیفان من شما را به این چالشوا دارم. آیا ایمانی مثل ایمان استیفان دارید؟ آیا مایلید برای عیسی مسیح بمیدید؟ آیا مایل هستید و میتونید به اون فیض دست پیدا کنید که مانند استیفان بمیرید و اونطور که خداوندش به او الهام کرد که دشمنانش را ببخشه میتونید ببخشید؟ امیدوارم سرمشق واقعی استیفان من و شما رو به چالش بکشه که مانند استیفان زندگی کنیم و مایل باشیم مانند او بمیریم پر از ایمان نجات بخش به ایسای مسیح مسیحای موعود نمیدونم آیا می‌خواهید اینطوری باشید و یا مثل کسانی خواهید بود که پیام امید نجات رو رد کردن. انتخاب با شماست دوست عزیز به شبان یا رهبرتون بگید که انتخاب شما چیه استیفان اولین شهید و یکی از ها شهیدی هست که جانشون رو برای عیسی مسیح دادن. در باب هفته کتاب اعمال شما موعظه‌ای رو میبینید که مردی حاضر به خاطرش از جان خودش بگذره. شما در اینجا موعظه‌ای دارید، همونطور که گفتم نه تنها مرور تاریخ قوم یهود هست بلکه اساساً اتهاماتی هست که متوجه رهبران مذهبی اسرائیل است. اتهامینه. شما همیشه خدا و هر کاری رو که خدا سعی کرده براتون انجام بده رد کردید. فیض خدا، نجات خدا، شریعت خدا و رهبران و مردان خدا را رد کرده اید. شما همیشه خدا را رد کرده اید و الان هم دارید خدا را رد می کنید. ای که ذاتن کافرید و گوشهایتان کرست. است. منظور او از گردنکشی اینه که شما نمیخواید سرخم خم کنید و تسلیم خدا بشید. وقتی که استیفان برای این معزه مرد، ثابت کرد که پر از روح است. استیوان رویای خارق العاده ای از خدا و مسیح داشت. وقتی میبینید استیفان داره سنگسار میشه و جانش را از دست میده برای او تأسف نخورید. همونطور که می‌بینید او از رویایی که از خدا و از مسیح داره به وجد اومده. برای او تأسف نخورید. یادتون باشه عیسی گفت این است حیات جاویدان که آنها تو خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستاده تا تو هست بشناسند. من خودم حاضر بودم جای خودم را با استیفان عوض کنم تا رویایی که او از خدا و مسیح داشت تجربه بکنم. من حاضر بودم با شادمانی جای خودم و با او عوض کنم چون این مفهوم اصلی زندگی هست. شما تا وقتی به شناخت خدا و به شناخت مسیح نائل نشید، زندگی براتون مفهومی نخواهد داشت. شناخت خدا و شناخت مسیح اونطور که استیفان خدا رو و مسیح رو شناخت زندگی واقعیه. پس برای استیفان تأصف نخورید. او طوری مرد که خداوندش با او الهام کرد بمیره. در حالی که برای بخشش کسانی دعا می کرد که جانش رو می گرفتن. در موقع سنگسار کردن ما استیفان رو می بینیم. این جای عجیبی برای ملاقات با او هست اما با این حال متوجه می شیم که او یکی از بزرگترین مسیحیان و بزرگترین رسول در بین رسولان هست در شهادت استیفان ما با مردی مواجه می شیم که نیمی از عهد جدید رو نوشته ما بزرگترین خادمی رو می بینیم که دنیا تا کنون به خود دیده. بزرگترین شبانی که تا کنون به دنیا اومده، بزرگترین معلم و بزرگترین نویسنده‌ای که در تاریخ کلیسای مسیح وجود داشته. وقتی او رو می که مشغول نگهبانی از لباسهای کسانی هست که استیفان رو سنگ سار می و میکشند. براساس بر اساس قانون یهود، شاهد جنایت به اندازه خود جانیان مجرم بود. اگه شما معتقد به مجازات اعدام هستید، یک دقیقه به این فکر کنید. آیا اونقدر به مجازات اعدام معتقد هستید که اگر شاهد صحنه ادام اعدام بودید، حاضر باشید کلید صندلی الکتریکی رو روشن کنید؟ آیا حاضر هستید چار پایه زیر پای یک محکوم رو که داره با تناب به دار آویخته میشه از زیر پاش بکشید؟ آیا حاضری رو به دار بکشید؟ آیا تا این حد به مجازات اعدام اعتقاد دارید؟ این چیزیه که قانون یهودی میگه. شاهدان باید در اعدام مشارکت کنند و یا جلاد باشد شاول ترسوسی برای اینکه تایید خودش را از کاری که داره انجام میشه نشون بده او که عضو سنهدرین و شهروند روم بود با نگه داشتن لباس قاتلان و جلادان استیفان عملا تایید و رضایت خودش را از این کار ابراز میکرد بنابراین به اندازه همون افراد که استیفان رو سنگسار میکردن مقصر بود این خیلی جالبه که بدونید موعظه‌ای که استیفان کرد بسیار مسمر ثمر بود. تمامی موعزه های پنتیکاستی در کتاب اعمال های مسح شده هستند. های کتاب مقدسی هستند. های مسیح محور هستند. موعظه انجیل هستند و مسمر ثمر هستند. شاید تعجب کنید که این موعظه از چه نظر مسمر ثمر بوده. در اعمال باب 22 پولس رسول به این واقعیت اشاره میکنه که در موقع مرگ استیفان حضور داشته. کاملا واضح که مرگ استیفان و نحوه مرگ او تأثیر عمیقی بر این مرد یعنی شاول ترسوسی داشته. شاول در باب نه تبدیل میشه و اسمش از شاول به پولس تغییر میکنه. بسیاری از محققین بر این باورند که شهادت و مرگ استیفان تأثیر عمیقی بر شاول داشته و نقش بزرگی در تبدیل او داشته. استیفان مرد در حالی که نمیدونه اسم او عزاش مسمر ثمر بوده. استیفان فکر نمیکرد که موعظه و شهادتش به خاطر این موعظه نقش عظیمی در تبدیل و نجات این مرد خواهد داشت. استیفان مرد در حالی که نمی‌دونست چند نفر توسط شاهول ترسوسی که نجات یافته به عیسی مسیح خواهند آمد و تبدیل خواهند شد. نمیدونست تمام اون کلیساهایی که تأسیس شدند و خدماتی که برای گسترش انجیل تا اقصانقات جهان انجام شدند، همه بخشی از ثمره مؤذه به خدا نیاز به کسانی داره که او رو خدمت کنن. روح القدس به هیچ وجه او اجازه نمیداد مؤذه را عوض کنه فقط به دلیل اینکه کسی اونجا حضور نداره. ظاهرا روح القدس با اصرار از او می‌خواست که مؤذه کنه و او اطاعت کرد و طوری مؤذه کرد که گویی سالون پر از جمعیت هست. حتی در آخر دعوتش رو هم اعلام کرد. تا جایی که او میدونست تا چندین مایل در اون اطراف کسی نبود. اما اون رو صبح در اتاق اورگ مرد لاغراندامی به نام دیوید لیوینگستون دور از دید همه در حال نواختن اورگ بود. وقتی او پیغام رو شنید تبدیل شد و قلبش رو به ایسای مسیح داد و بعد همونطور که احتمالاً میدونید به افریقا رفت و یکی از بزرگترین خادمینی شد که تا اون زمان در افریقا خدمت کرده بود. او عملاً بنیانگذار بشارت در افریقا هست و الگوی خدمت در افریقا رو تهیه کرد بنابراین به خاطر اطاعت یک واعظ که به ندای روح القدس پاسخ داد و اون موعظه رو در سالونی خالی انجام داد و از مردم دعوت کرد هزاران هزار افریقایی در آسمان خواهند بود. اگرچون واعز اون مرد لاغرندام رو در اتاق اورگ ندید که قلبش رو به مسیح داد اما به هر حال اون ای مسمر سمر بود. معذی استیفان همچنین معذی بود. تا اونجایی که به او مربوط می شد تنها سمره ی سنگ هایی بودند که پرواز کنان به طرفش می تا جان او را بگیرند. او در اطاعت از خدا موعظه کرد. او مرد در حالی که فکر می کرد نتیجه مععزهش مرگ او هست. او حاضر بود جان خودش را برای مسیح محبوبش بده. به خاطر مععزهش درباره مسیح خدا در قلب او گذاشت که اگرچه به بهای زندگیش تمام میشد اون او را رو بکنه. وقتی بقیه کتاب اعمال رو می خونیم میبینیم که موعظه استیفان بسیار بسیار مسمر ثمر بوده این مرد یعنی شاول که در انتهای باب هفت و ابتدای باب هشت با او ملاقات کردید آزارهای فراوانی رو علیه مسیحیان رهبری کرد این جفاها ها رو از اورشلیم محو کرد همه به جز رسولان به یهودیه و سامره فرار کردند بعضی یهودیان خداشناس با اندوهی فراوان آمدند و استیفان رو کردند. شاول سعی می کرد که بنیاد کلیسا رو از روی زمین محو کنه. او خانه به خانه می گشت و زنان و مردان رو بیرون میکشید و به زندان میانداخت. و اما آنانی که پراکنده شده بودند به هر جا که می‌رفتند پیغام خدا را اعلام میکردند. وقتی ما شاول ترسوسی رو ملاقات میکنیم او بزرگترین دشمن عیسی مسیح است. در اعمال باب نه ما می‌خونیم که او میخواست به سوریه بره چون خیلی مشتاق بود که ایمانداران اونجا رو تسلیم مرگ بکنه او تنها با دستگیری ایمانداران در اورشلیم راضی نمیشد و وقتی می‌شنوه که در شهر دمشق سوریه ایماندارانی وجود دارند مجوزی برای دستگیری اونها میگیره و برای دستگیری و آوردنشون به اورشلیم و تسلیم کردنشون به مرگ راهی دمشق میشه در راه سفر به سوریه در جاده دمشق او مستقیما با عیسی مسیح قیام کرده مواجه میشه و به طور معجزه‌آسایی تبدیل میشه. وقتی اناجیل رو به پایان میبرید، بعد از اون شاول یکی از بزرگترین معجزات عهد جدید نیست هست. وگر نباید باید گفت که او فریبکار یا دروغگو هست. من فکر می کنم در این نقطه، درست در همین جا، در بررسی عهد جدید، باید در مورد این مرد تصمیمی بگیرید. او خودش در نامه هاش مخصوصاً در غلاطیان باب یک به ما میگه که وقتی در راه دمشق تبدیل شد، اگرچه از کتاب اعمال اینطور پیداست که او بلافاصله رفت و به موعظه پرداخت اما باب یک رساله غلاطیان به ما میگه که پرانتز بزرگی بین تبدیل شدن او و خدمت و موعظه وجود داره پولس در رساله غلاطیان باب یک به ما میگه به محض اینکه او تبدیل شد به عربستان رفت محققین مطمئن نیستند که آیا او میگه سه سال در عربستان بوده یا چهار سال یا چهارده سال محققین بر سر مدت زمان تجربه تنهایی پولس در بیابان عربستان توافق ندارند. پولس حداقل به مدت سه سال در عربستان بود. در غلاطیان باب یک، پولس ادعا میکنه که مسیح قیام کرده سه سال با او در صحرای عربستان بوده. او ادعا میکنه که هر چیزی رو که در این رساله ها مینویسه و نیمی از عهد جدید رو شکل میده از خود مسیح تعلیم گرفته. پولس میگه که بعد از چهارده سال او به اورشلیم رفته و برای اولین بار در زندگیش با دیگر رسولان ملاقات کرده من همیشه تعجب کردم که او چیکار کرد که دیگر رسولان رو قانع کرد که به اندازه خود اونها او هم یک رسوله و راستش رو بخواید حتی بزرگتر از اونها هم بوده به هر طریقی که بوده پولس دیگر رسولان رو قانع کرده که مدت سه سال تمام همونطور که اونها با عیسی مسیح بودن او هم با عیسی مسیح بوده بدیهیه که پولس به رسولان چیزهایی در مورد عیسی گفته که فقط کسی که با عیسی مسیح بوده میتونسته بدونه. وقتی او همه این چیزها رو به اونها گفت، اونها با او دست دوستی دادند و به او گفتند بسیار خوب، تو به دنیای غیر یهودیان برو و ما نزده یهودیان خواهیم رفت. به نظر میرسه این مأموریتی که خدا به اونها داده. اگه من بودم، فکر میکردم این یک توطعه هست و به اون صورت عمل نمی‌کردم. پولس یک عالم یهودی بوده و تمامی اعتبار نامه‌های یهودی رو داشته، عهد قدیم رو به خوبی می‌دونسته، یک محقق بوده و یکی از متفکرین زمان خودش بوده. اگه من بودم پولس رو نزد علمای یهودی می‌فرستادم و اون ماهیگیران سواد مثل پتروس و یعقوب و یوحنا رو به دنیای غیر یهود نزد اون وحشی‌های بودپرست پرست می‌فرستادم که هیچ زمینه الهیات و مسائل روحانی و شریعتی نداشتند اما خدا مثل ما عمل نمیکنه و در کتاب مقدس میگه خداوند میگوید افکار من افکار شما نیست و روشهای من مثل روشهای شما نیست تاریخ به ما از جان وسلی که تحصیلات فوق داشت میگه که مردم عامی با شادمانی به او گوش می کردند برای کسانی که در مزار کار می کردن و برای کسانی که در معادن زغال سنگ ویلز کار میکردن موعظه میکرد. ما فکر میکنیم مردی با تحصیلات عالیه امکان نداره مردم آمی به او گوش کنند. دعای تلمودی که سواد خیلی معمولی و مختصری داشت و گرامر افتضاحی داشت به نزد نخبگان و تحصیل کردگان آکسپورد و کمبریج رفت. وقتی مودی در انگلستان موعظه میکرد، افراد تحصیل کرده نخبگان و تمام کسانی که تحصیلات عالی داشتند هزار هزار به جلسات او حجوم می آوردن به نظر می خدا از اینکه افراد معمولی رو برای انجام کارهای العاده به کار بگیره لذت می بره خدا عالم یهودی تبدیل شده رو نزد افراد بی فرهنگ بطپرست می فرسته و رسولان عامی و بی سواد رو نزد علمای یهود می فرسته کسانی که متخصص الهیات و تحصیل کرده ی علوم مذهبی بودن. در پایان باب هفت کتاب اعمال و در ابتدای باب هشت و در اعمال باب نو ما مهمترین شخصیت عهد جدید رو از این مرحله به بعد ملاقات می کنیم. در اینجا باید تصمیم بگیرید. آیا پولس بعد از اناجیل بزرگترین معجزه عهد جدید بود یا او یک دروغگو بود و یا یک شیاد بود؟ این خیلی مهمه که تصمیم بگیرید و مشخص کنید آیا پولس رسول یک شیاد بود و یا یک معجزه. همون خدایی که شاول ترسوسی بزرگترین دشمن ایسای مسیح و بزرگترین دشمن ایمانداران به ایسای مسیح رو تبدیل به پولس رسول بزرگ کرد، میتونه این کار رو در زندگی شما هم انجام بده. زندگی پولس رسول رو مطالعه کنید و از خودتون بپرسید که آیا میخواید زندگیتون رو تسلیم خداوند ایسای مسیح بکنید؟ ما به؟ مطالعه شخصیت این مرد بزرگ پولس رسول باز هم ادامه خواهیم داد امیدواریم در ادامه این بررسی باز هم با ما همراه باشید تا دیدار بعدی فیض خداوندی سایه مسیح بر شما و خانواده شما باد عزیزان شهادت پولس رسول از جمله شهادت هایی است که به من امید زیادی میده چون اگه خدا میتونه کسی رو تبدیل کنه که از مسیح متنفره و به اون جفا میکنه و از اون شخص بزرگترین خادم مسیح رو بسازه و از اون با قوت استفاده کنه پس اون میتونه از من و شما هم استفاده کنه زندگی پولس همینطور منو تشویق میکنه که در دعا برای کسانی که هنوز از خدا دورند و شاید حتی به پیروان مسیح آزار میرسونن ایستادگی کنم اونها به نظر خودشون کار درستی انجام میدن بیاید از دعا کردن برای اونا خسته نشیم تا خدا قلب و زندگی اونا رو عوض کنه. همونطور که زندگی شاول ترسوسی رو عوض کرد و از او رسولی بزرگ ساخت. در جلسه بعدی، در ادامه بررسی تاریخ کلیسا، با خدمات پولس رسول آشنا خواهیم شد. ترتیبی بدید که باز هم با ما همراه باشید.